خب این یک بسیار و یک دیگه به بسیار فرمالیستی و مکانیکی بنسان بود. مثلا بمان این گروه به یک نفس سوسیگر همون یک نفس عماری داشت نه شو به این نفس عماری این نفس امپریالیست عماری هم بریالیست. ولی نفس عماری هم امپریالیست این داشت نجا بود. خوب برای همین بود که سوسیالیسم و کمونیسم آرمانی مارکس و مدینه فازله که در اونجا قرار بود ادالت مطلق برقرار بشه و اون بهش بر روز این برقرار بشه هم مکتبی بود که بدونه بوجود وجود آمدن یک تکنولوژی تمام اتوماتیک ممکن بزیار نبود پس در واقع میشه گفت نگاهه این سوسیالیسم هم نگاهی است کاملاً امتونه لیستی بود آنها می پنداشتن که با تقسیم کردن مساوی این مالکیت یا با بیان دیگر اصلا کل جامعه رو از ابزاری تولید از تکنولوژی خلق مالکیت کردن مشکل راحت حل می کنه. مشکل ظاهره حل می کرد. ولی نفس انسان رو مطلقا تغییر نداد اگر میداد داد سال سوسیالیم دا تبدیل به فاسدترین ترین امپریالیستا امروز نمی شد تبدیل به مبتزلترین و عبلغانه ترین نوع امپریالیزم سرمایی نمیشد. نمی چرا برای انسان درک نشده بود روح انسان درک نشده بود نفس انسان شناختن نشده بود برای خود انسان علت خودش فهم نشده بود خوشبختی بدبختی ظلم ادالت تماماً مفاهیمی در بیرون از انسان و غیر از انسان تلقی می شود. خود انسان علت شناخته نشده بود مذهب بالا لا مذهبی همینه مذهب خود انسان رو علت خودش قرار میده خوشبختی و بزبختیش رو از خود انسان میدونه دونه همینه خداوند در انسان در نزید خدا مسئول تمامی سرنوشت خودشه ببینید پس فرق نمی کنیم این هر دوتا دیدگاه امپریسی و ها دیدگاه واحدی بود فقط اختلاف سلقه داشتن راه و نگاه و منظر یکی بود در روش با هم دیگر توابود داشتن هر دوتا یک جهانبینی غیر انسانی بود واقعا هم باسته گفت. به غیر انسانی بود مفهوم واقعی غیر انسانی بود تر برنگ ادالت رو ببسط رو، ها واحده از بیرون می دلستن. جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر ابزار تولید، جبر، ببینید خود همین خودش تحقیل کردن انسانه کسی که خود انسان رو علت خودش قرار نده در واقع بزرگترین ظلم رو انسان کردن خود این نگاه ذاتیش ظلمانه بود تر برن که انسان رو علت خودش قرار نداده بود انسان رو یک معلول کرده بود که جبرهای بیرونی، جبرهای زمینی و آسمانی هستند که سر به شروع تعییم میکنند این مکاتب مکاتب جبر پرست بودن غیر انسانی بودن با مفهوم واقعی کلمه غیر انسانی بودند. نگاه اینها نسبت به انسان نگاه زالمانه و ضد انسانی بود برای همین بود نفسیالیز یک خطای معرفتی از این داشت ببینید در اینجا منظوری نیست که مبارزاتی که بر اساس این ایدولوژی در تین دو قرن در دنیا صورت گرفتن ما تخته کنیم این خطا بود این جهر و اگر نه خودم به شخصه من مخلص هر کزی هستم که یک سنگ به سمت یک ظالم پرتاب کرده باشه با هر دیدگاه و اتواق من خود شخصا سجده می کنم آن دستی را که این سنگ رو پرتاب کرد و پای را که یک لگد به یک ظالم زد اینها مساجد شخصی من هستند مساجد واقعی وجود انسانه یه قدیسی داریم، سخنی داریم در صدر اسلام که لفظ مساجد در قرآن رو بیشکر ضعیمه بردن درک نمی های آیه ای ما فرمودن که در اینجا مساجد منظور خود دست انسان و محل های سجده انسانه در واقع اون مسجد اصلی خود وجود انسانه من خداوند زمین آسمان و چی که در آن هست رو کرده تا انسان رو سجده بونن در واقع مسجد اصلی موجود خود انسان این چیزی بود که در این ایدولوژی مدرن درک درد نشده بود این خطا بود این خطایی که بایستی جبران بشه این یک خطای معرفتی بود ببینید اگر بخویم بلگردیم به اصطیق مرکزی آن جنبه اقتصاد سیاسی این واقعه امپریالیزم استثمار خب واضح شد که به مسئله ماشین و ماشینیزم و تکنولوژیزم که قلب تمدن است که به اوجش در امپریالیزم منتقی میشه. شه خب این واضح طور که تمام خساددانه های بزرگ غرن 18 و 19 و 20 منوان یکی از بزرگترین کشف قدم روی اقتصاد سیاسی ارزه کردن که نخستین کس و مهمترین اینها آدام اسمیت بود مسئله ارزش اضافی یا با قول خودشان سرپلاس ولیو بود که حاصل ماشین هست ماشین این ارزش اضافی رو تولید کرد به وجود آورد هر چکه که تکنولوژی پیشرفته تر میشه سریع تر کار میکنه و لذا این اضافی به طور تصاعدی فضاینده میشه اصلا پیرادیز مسئول این ارزش اضافی فضاینده است. این ای اضافی که ماشین پدید میاره تکنولوژی پدید میاره ارزش اضافی ثابت هم نیست این واضح به دلیل خب این نظر لازه فیلم اقتصاد و جامعه شناسی اقتصادی کاملاً درست بود که مارکس کرد که بایستی صنعت رو از دست صاحبان صناعیه در آورد و حکومت سوسیالیستی حکومتی که دولت این صناعیه رو مالک بشه و اسم این مالکیت عمومی مالکی بود همه مردمان به صورت پرولتر و کارگر برای این صناعیه که هیچ کس مالکش نیست و در واقع اینگار مال مردمه کار کنند و نون بخورند جامعه شوروی تا حد زیادی این برنامه سونست پیاده کنه و درست در اون مراحلی که قرار بود وارد فاز کمونیس بشه اصلا فروپاشید و نفس امپنیلیستی جامعه روسیه و افراد آشکار شد هزاران برای و از جامعه آمریکا و جامعه غرب و همین دلیل ما میبینیم بعد از فروباشی روس ها، حریص‌ترین و دیوانه ترین ملت دنیا شدند و بدبخت‌ترین ملت دنیا شدند این ارزش اضافی یک معنایی در دین و در اسلام داریم که بسیار معنایی سیتره و اون ربا است ربا ربا که بزرگترین و محورترین حرام در شریعت انبیا الهی همه غری تمام حرام ها واسطم ها بود خود ربا از لازم خود لغت و ریشه لغت یعنی زیاد خواهی فزون طلبی تو امروزه در اصل ماشین در اصل صنعت و سلطه صنعتی خب این معنا رو میشه در مفهوم ارزش اضافی در کرد که خود این اضافی این زیاد خواهی رو ممکن کرده زیاد خواهی لامتناهی رو تا برای انسان امروز ممکن کرده خب الان تاریخی ما میرنیم در قرآن میخونیم که لخستین گروه و قومی که رو حلال کردند ولی اسرائی در قرآن اومده که گروهی از بنی اسرائیل گفتن ربا چه این شکالی داره؟ ربا نیست، این نوعی از بی و تجارت است و کسبوخار و کاسیبی بسیار خوبی هم هست و طولش هم بسیار خوبه مگه چه ایگه داره؟ این تفسیریه که ربا نیستاری کرده یه خواستین که ربا رو یعنی یکی از حرامترین امور دینی رو حلالش کردن اونها بودن ولی یکی از بنیانگذاران اصلی و قدیمی رباخاری و نیستایی بود بعد این طریق کل دین موسا وارونه کرد و تمام حرام ها را حلال کرد به همین دلیل هم ما میبینیم که نخستین بانیانه بقول ما فن آوری و صنعت و علوم فنی هم و بودند. بودن الله تاریخی نخستین اینها خود سامیری بود که در قوم موسا یک مهندس بود که واسطه مهندسی خودش تونست هم گوساله معروف رو بسازه که بقول قرآن حتی از خودش صدا در آورد واسطه تکنولوژی که در اونجا استفاده کرده بود و همه من رو به گرد خودش به پرستش کشید عزیل آزباسی گفتش که خود انسانی ریبانیه یعنی ربا و فضولی طلابی بود بنابرای باز می‌بینیم که امکان و ابزار ربا همواره دانش فنی و ماشینی بوده یعنی شیوه‌هایی از زندگی که بتونه هردش اضافی توجید کنه پس ببینید ربا مفهومی بسیار وسیع داره این نزول خوری که ما میکیم یکیم قدیمی و دموید شده ترین نوع ربا است به بایاندیه باست بگیم که یک نظام امپریالیستی نظامیست ربایی به بیان قرآن ربایی یعنی فدونی طلب به طور مطلق جهانخار و آدمخار کل جهان و بشریت را هم به بده سیر نمیشه و بلکه به آسمانها میره سفینه میفرسته تا کراعت دیگر را هم به بده پس این اللازه تبیر قرآنی راز امپریالیزم موان رباه هست رباه و ما میدونیم در طور داری بخش عظیمی از بزرگتری من نخستین بانیان علوم فنی و تکنولوژیکی نیز همین مهندسین و دانشمندان بنی بودند این واضح از سامیری بگیر امتا اینشتین که اندیشهش علت پیدا آمدن بمب اتومی شد بمب اتمی، بمبه اتومی به عنوان که میشه از طریق آن کل کوریزمین رو قرد داد مم. و پیشرفته ترین تکنولوژی رو در خودش داره خب اینکه چرا پیشرفته ترین بخش تکنولوژی همیشه که ما خدمه تسلیحات بوده فقط از چشم امپریالیستی نفس بشر میشه در یعنی ربا یعنی فوزونی طلبی به با اون مفهوم سنتیش دیگه در حال دیموده شدن دیگه به مثلا نگه خوید پدیده به رانت راند راندخاری خودش دیگه باید بسیار موزی تر از نوزدخوری ها هزا برابر جهان خارتره این راند و راندخاری از نوعی سنتیش گرفته تا بانکیش گرفته تا رانده های فرهنگی و تبلیغاتی. این مسله قابل درک هست که بقول علی مسئولیت و معاخذه مظلوم و ظلم در از خدا بسیار شدید دارد تا خود ظالم مستکبر چرا اینکه یک آدم طبقه پایین به چه قیمتی زیر بار ستم مستکبرین میره؟ اصلا چه چیزی گیرش میاد؟ هیچ چیزی گیرش نمیاد هیچ چیزی گیرش نمیاد اون اندک عزت یا اعتقاد و که داشته رو میفروشه به هیچ و بردهتر و مزدورتر میشه حداقل اگر اون ظالم و اون مستکبر صاحب سروت و ربا در ستمی که میکنه حد دقل برای چهار روزی بر ثروتش می بر قدرت و سلطتش میافزاد این یکی مزرم پذیره همین را دست نمیاره همین را دست نمیاره برای همین او واقعا از این را که ظالمتر و عبلهتره و لذا خداوند او رو بیشتر مواخذه میکنه کنه پذیر را حالا مسئله پیش میاد که این سؤالی که تر کردید این مظلومیت که مثلا مظلومیت امامان رو میگیم یا مثلا اماموسم رو به عنوان اصفه مظلومیت خب این یعنی چی؟ خب در اینجا واقعا باستی کمی شک کرد در این واجه مظلومیت اگر به مفهوم مفعولیت یعنی پذیرش ظلم باشه که ما نمیتونیم بگیم امامان ظلم پذیر بودن اماموسم باستن اتفاقا درز برعکس بوده یا یعنی این واجه مظلومیت باستی یا اصلا باستی واقعا درست به دلیل این که امام حسین ظلم به شهادت رو برمسید پس این لغتها بسیار مهم هستن که ما بدونیم ولی متأسفانه این مظلومیت و مفهوم ظلم پذیری و ظلم شدگی در فرهنگ عامه در باره امامان و با امام حسین به میره برن. همینه به طرزی واقعا مازی خولیایی ما میشیم و برای ما حسین گریه میکنیم و به سرکلا ما میکنیم به عنوان بدبخت ترین آدم دنیا چه آدم بدبختی بود امام حسین خب این واقعا از امام نفهمی و از اصلا یک جهل عظیمی حکایت میکنه اگر به این احساس باشه که متصدبان نظر میسته که خیلی از موارد اصلا به این معناست یعنی ما وقتی بیاد امام حسین اگر گریه میکنیم به سر صورت خودمون میکنبویم نه به عنوان اینکه آنها مصحر عظمت الهی بودند نه خیلی دنیم مصحر بدبختی بدبختی فلاکت بودند خود همین واقعا دید وارونه و ایمان واجگونه و شیگری ای ماست آنها مصحر عظمت الهی بودند واقعی آشورا در حقیقت بزم الهی و عروسی خدا بود زد ظلمترین واقعی تاریخ بود پس بهتره ما همین واژه ها رو و این همین احساسات این گونه رو درش تجدید نظر کنیم. ما تا زمانی که مامانمون رو این شکلی به این احساس یا به این معنا نگاه میکنیم مسلما از اونها بیزار خواهیم شد. چرا؟ چون که اونها بدبخت ترین آدم ها بودن. خب ما هم که نمیخون بدبخت باشیم. باز واسه سعی کنیم مثلا دوروبر اونها نریم، به اونها اقتدا نکنیم، از راه رویش اینها پیروی نکنیم تا مثل اونها بدبخت نشیم. ولی خب گاگرگای گریه بکنی واسه اینها بند نیست چرا مثل گفته شده گرگز گریه کنه و بختی شده میشه و خوشبخت میشه این تفکر بسیار جاهلانه که متاسفانه در هم آگا و نهوداگا ریشه داره و واقعا با سی مسئله درک بشه این, این مسئله هردش اضافی مترادف معنای ربا در تیفیه بسیار وسیع قابل تعمل و این که امپریالیز هم همواره همون تکنولوژیزم بوده فوت و پرستی ببینید این پوشتینی که بر تن این لباسی که در تن منه این خودکاری که در دست من این کاغذ این میز این دوربینی که داره فیلم برمیداره او نامش محصول فراورده های و تکنولوژیه و من اینها دارا هستم ولی اینها دارم استفاده میکنم این خونه این سخوه که بالای سر منه و این ما درک کنیم اینها را این قایت بلاحت اگر ما اینها رو بخوایم مختش کنیم یک دوران این مرحوم دکتر از تناسخ و از خودبیگاندگی حاصل از ماشینیزم و ماشین زادگی صحبت میکرد ایشون رو مدت هم میکردن که ایشون طرفتار علاق سواریه یا این نوع اتحامات اساساً از اداوت بود چون نهایی که تومن میدادن میدانستن که منزول جریعتی نیست ولی خب زمانی که ایشون اینقدر انگوش گذاشته برو این مسئله برخواه میگفتن آقا درسته این ماشینیزم شما بگید دوچار اشکاله ولی ما هنوز به همچین مراحلی نرسیدیم که نگران ماشینیزم باشیم ما تازه کمبود ماشین داریم باز تکنولوژی داشته باشیم. خب این حراقه ایشون سال از انقلاب دروش به موقع بوزی را با از انقلاب ما دوچار واقعا ماشینیزم ایدولوژیکی شدیم تکنولوژی پرستی شدیم و لذا تمام آرمان های دینی را زیر پا گذاشتیم و به این روز و با همه اصول خودمون به اون بست سیدیم بنابراین باستی بفهمیم تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی ماشنیزم. ماشنیزم ما گفتیم که مربوط اصر مکانیک بود الان باستی از الکترونیزم صحبت کنیم از اتومیزم صحبت کنیم از لیوریزم باستی صحبت کنیم از نوترونیزم باستی صحبت کنیم دلدادن به اشتیاب فوتفند به کالاهای های سنعتی. این است ماشینیزم تکنولوژیزم و رازی از خودبیگانگی و ابتلاعی به ظلمت و ظلم استفاده از این لباس یه وقتی که صحبت از مالکیت عاطفی و سلطه عاطفی میکنیم که کسی که همسر داره مسلمان یه قوانین و حقوقی است، اینا رو باعثی درک کنیم سلطه و همسر یا همسر پرستی این است ظلم و ظلمت مالکت پرستی، اشیا پرستی و روح خود را دادن به اشیا و به تکنیلوژیست بردن این است، ظلمی به خود ببین قرآن می فرماد که هیچ کسی به کسی ظلم نمی کند هر کسی به خودش ظلم می کند به این معناست. از عزت علیه می فرماد که به هر ملتی لایق همون است که داره چه ظالم اون حکومت چادیله اون ملت لایق بشه برای همینه در خود به دیگه این فرماد به مومنان که ما با حکومت‌های هر چند ظالم هستند شما در بیفتید بخوایید عذاب الهی برای شما قدید میاد وقتی اون مردمی که آن حکومت رو میبذیران دارند و خودشون هم ظالمان و هم ظلم بذیر دخالت شما در این ام، دخالت در اراده است. زیرا این خودش عدالته یک قوم ظالم باعث حکومتی ظالم داشته باشه تا تعادل داشته باشه ببینید بعد انسان به خودش ظلم میکنه به تعبیر قرآن، به تعبیر شیعی هر کسی خود ظالمه و خودشه و خودشه مظلومه ظلم خودشه ولا غیر و زل یعنی شیعی پرستی مالکیت پرستی شریفترین و لطیفترینش همسر پرستی و بچه پرستی و نجات پرستی اینها دیگه امیخترین و اتفاقا حضرناکترینشه اما در بایه سوال گفتیم که پرستش اشیاء و مصنوعات و تکنولوژی خود معلول همسر و فرزند و نجات پرستیه ببین انسان میخواد همسر و فرزندانش و سلطه خودش در و روح و اراده رو را ببله این است زیربنای باطنی و بسیار لطیف و نامرئی ظلم کسی که میخواد همسر خودشو بفرسته مجبوره تحت سلطه او در بیاد ببین دادن. به غیر خدا ظلم است هر کس غیر خدا رو بر دل وارد کنی به خود ظلم کردی بل انسان خود ظالم و خود مظلوم خیشتن است هر کرا غیر از خدا در دل جستجو کنی و بخوای بر دل وارد کنی ظلم کردی و خودتو با آتیش کشیدی چون قلب خانه خداست هر چه غیر خدا بر او شود آنجا یک اشتهالی ایجاد میکنه اشتعال یعنی نار یعنی عذاب و نار و ظلم همین است و انسان دیوانه میشه و از خانه دل میره بیرون تا نشوزه. در بیرون اسیر اشیاء و مستکبرین میشه ببین پس منشا استثمار اقتصادی چیست اراده به آدم خوری است که اسمش عشق و عیسار است پس ابتلای به ظلم در بیرون از خود ظلمی است که انسان میخواد غیر خدا رو به پرسته بر دل وارد کنه نمیتونه و وارد کردن غیر خدا بر دل دل رو به آتیش میکشه بلا انسان از این خانه دعی میره این بنیاد ظلمه در بیرون اسیر ظالمان میشه از داستان دلدادگی انسان امروز صنعت تکنولوژی و فراورده های تکنولوژی که از خود بگانگی و ظلمت و ظالمیت ما باز بزنیم این دبتی یک بسیار هداهده و بسیار دقیق یک کالای تکنولوژیکی که افسون جذبه و دلبریش از, از انسان هزار بابر بیشتر از یک کالای طبیعی است را برنگ خودش ذاتاً محصول و معلول ماشین و تکنولوژی به عنوان کارگاه اصلی ربا مفهوم افزونزایی ارزش ازافیست این یک بحثیست میشه گفت از یک لاز مربوط به قدم رو متافیزیک تکنولوژی بلی. متافیزیک تکنولوژی این مسئله بسیار مسئله امیقی است که بسیار است ببینید حتی جهفندیشترین سوسیالیست های قرنما که خواستن با سوسیالیسم و مسئله ادالت و مالک زدائی این مقدار نگاه انسانی تر داشته باشند. گفتن که مالکیت یک عادته و بنابراین از طریق یه سوسیالیستی یا دیکتاتوری پرولتاریا ما اگه بتونیم این مالکیت ها را از انسان ها سلب کنیم و مالکیت را عمومی و حکومتی بکنیم یه مدتی آدم ها مثل ترک عادت سیگار رنگ میکشن بعدش هم فراموش میکنن هفته هست سال در شرک اینطور شد ولی ندیجه ایک آمدن وارو پس بس مثلا اساسی تر از عادت خیلی خیلی اصاسی تر از عادت دکتولوژی امروز دل از انسان برده این همان قدم رو به اشد است که در تاریخ سابقه نداشته مفهوم اشد ابتلاع انسان به ربا, ربا. این بحثیستگر بسیار وسیع و عمیق و تو این جلسه فیلن مجالبه سیب اون بیشتر از این نیست خب این از این دیدگاه حالا بتهمی نهیم مفاهمیم چرا در نیمه دوم در نبیستون و در ده های اخیر چبونه امپریالیزم و سوسیالیسم و سهیونیزم ذاتاً به اتحاد و یه رسیدند رسیدند سهیونیزم آن شعبه سامیری و ربا پرست بنی اسرائیل سوسیالیسم و کمونیسم و امپریالیزمیزم ذاتاً با نگاه تکنولوژی پرستی منتا دبا بر سر قدرت بود پس این هر سه سه نگاه واحدی بود و آن زیاد طلب و فضونی طلب بود که در تکنولوژی پرستی خلاصه می شود. پس اینا می به اتحاد می رسیدند ام. همطور که در تحیه 1970 بالاخره بر اولین بار نخستین اتحادی عظیم و عظیمترین اتحادیه تاریخ بشری تحت عنوان کمیسیون جانبه در نیورپ و تحت رهبری راکفلیه شکل گرفت که یک تاقیه عظیم و جهانی امپریالیزم، کمونیزم و سهیونیزم بود که بر اساس وحدت تکنولوژی و وحدت بانک و بانکداری و وحدت مراکز یلم شکل گرفت که نهایتا به همه قلمروهای اقتصادی و نظامیان کشیده شد به خود مطالعه این اتحادی معروف که متصفان هرگز مورد بحث روشن فکران قرار نگرفت و این قضیه تجزید تجزید نشد که آن کمیسیون چندین دهه است که در جهان داره به عنوان ایدولوژی مادر دست پس فرده تمام سیاست های جهانی رو داره رهبری میکنه این رازه ذاتی این کمیسیون بود بنابراین به میشفهمید میشه فهمید که چرا مثلا همون سوسیالیست های اولیه در شوروی در نخستین دعیه های شوروی در جامعه روسیه ما دیدیم که چگونه اینا در هر جا که میدیدند مؤمنین و خاص مسلمانان نهزتی ادادت طلبانه بر اساس حضورت و ایمان به راه انداختند ما میدیم که دست این کمونیست در دست امپریالیست بود یکی از مشغول ترین نمونه آن دوره اولیه استقرار کمونیست و شروعی اتحاد حزب کمونیست با استعمار بریتانیا بود برای سرکوبی نهزت میزاکوچه خانه جنگلی این انقدر وقاحت به پلیدیشون رو آشکار عمل کردن و نتونستند که انگار آشکار عمل که با نیزت جنگل اینا غرارتات داشتند علنا این اینها پیمان صلح و همکاری رو زیر پا گذاشتند و از پشت به این خیانت کردند و با بریتانیا متحد شدند در حالی که اشد جنگ رو با بریتانیا داشتند اونها ولی در قبال نیزت جنگل این ها با دیگه متحد از این همون ذات واحدی تکنولوژیکی و تکنولوژی وابسته که در واقع همون کفر بود در اونها شکلی اماج کرد همواره در طول تاریخ همینطور بود. و همین دلیل است. حالا مثال دیگه می‌زنم. این مثال اخیراً رخ داد. ما بیاد داریم حدود 8 سال پیش بود که یک جریانی در خود خاک آمریکا در ایالت تگزاس پدید اومد. یک جامعه مسیحی و دینی تعدربری کسی به نام دیوید کورس جامعه کوچیکی پدید آوردند در یک شهرکی عدهای به هم جمع شدند چاس پانسد نفر و تصمیم گرفتند که بر براساس ایمانی مسیحی زندگی کنند دست از ایاشی و فساد فسق و فجور و تکنولوژی پرستی جنونآمیز آمریکایی بردارد یک جامعه کوچیکی پدید آوردند که در آنجا می خارگی فساد هموسکسوالیزم ها و فیلمهای پرنوگرافی نباشه حل کلومی خانون کاباره نباشه ولی ریستون بوده امریکا آن هم یکی از ملوستری و عاشق پیشترینشون یعنی آقای کرنگتون دستور داد تا آن شهرک را به هیچ جدال و جنگی آنها ای جامعه بسیار صالحی بودند نه هیچ اسلحی داشتند با بوم نپال آن شهرک را با زن و مرد و کودک سوزندند و ستا هیچ کسا نرفت. ببینید پس هر جا که دین باشه معرفت دینی باشه هدالت دینی بخواد باشه دموکراسی دروغین گندش در میاد و ماهیتش ها کار میشه ببینید دموکراسی ما بس بفهم میبینید چیم بزرگتر از این در تاریخ محاصر جهان بدیب نای آمده دموکراسی از یک لازی گفتش که امروزه دجالی ترین و مردم فریب ترین واجه هاست حتی این عنوان بزرگترین ظلمه ها روخ داده ظلمانی ترین واجه این دموکراسی بود در عمل شده و هر کسی که انده که علبه داشته واژه شده که انتیب اسمش دموکراسیه و همیان اروپایی، آمریکایی، این واقعا از این دموکراسی چه میخواند؟ چه صودایی در سر دارن؟ این از این دموکراسی و برابری یک برابری میکانیستی ماشینی و تکنولوژیشی میخوان ها را هر یک مبدل به یک پیچ موری از نظام تکنولوژیکی میخوان بکنند تا بتونن در ماشین بزرگ امپریالیستی خودشون در جهان افرادی بشری رو به عنوان پیچ موری بخار بگیرند این است دموکراسی. و اما ما با عنوان مسلمان بایستی بفهمیم دموقراسی هنی چی ببینید دموکراسی دموقراسی مردم دموکراسی هنی حاکمیت مردم السلام مردم سالاری. این در خود علوم سیاسی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا و در همه جا دموکراسی تلقی واضی و زلال داره. خودشون میگن دموکراسی یعنی ماجورتی رول و ماینورتی رایت right. یعنی حاکمیت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت. این ایدئولوژی در خود امریکا ما که خود همین تریف تا درهیچه وارونه دارن همبر می‌کنه کدوم اکثر یکی در امریکا حکومت میکنه؟ این 300 میلیون آمریکایی یک درصد از همپریدیستا و مزدوران همپریدیستی دارن و 99 درصد امریکایی حکومت میکنن این خب این بیشتر از این خود این دموکراسی امپریالیستی معنای خودش رو بازده کرده که در جادیترین واژه و است که داده شده و ما علاقه دینی ما بس دموکراسی ببینید در کردیم ده ها آیه داریم که اومده اکثرون ناس لا یومنون، اکثر اون ناس کافرون، اکثر اون ناس جاهلون، اکثر ناس واسقون خب ببین، اگر دموکراسی به با مفهوم واقعیش هم به اجرا بشه که هرگز اجرا نمیشه و نشده یعنی حکومت اکثریت دیگه قرآن میگه اکثر مردم همیشه اینند ببین وقتی این آیات میاد از زمان حال و استمرار صحبت میشه در جای قرآن آمده دیگه قرآن اومده که این سنت خدا بر روی زمین است که اکثر ناس اینجوری کاوها رو جاهل و زالین و ظالمین باشند خدا چنین است بنابراین ما با مرمسامان وسیله فهمیم که دموکراسی یعنی حاکمیت جذب کفر و ظلم چون اکثر ناس اینگونه هست. خب بنابراین پس ما باستی با احتیاط واجی دموکراسی دینی رو بکاریم. بسیار ما میدیم که آمریکایی‌ها ها شعار دمکلاسی میدن تعریفش رو کردن تعریفش درسته ولی آمریکایی‌ها خودشون عمل نمی ولی ما میخوایم عمل کنیم بسیار خوب ولی اگر ما اهل قرآنی ما میدانیم که دموکراسی دینی تا زمانی که ما به زمان ظهور نکرده که مردمان به یک توبه کبیر جهانی نرسیدن نماکن است. برای پیدواردن دموکراسی دینی و مجبوریم دین روز از در درجن محتوی خالی کنیم تا بتونیم همچین واجه ای رو به صفت برسونیم و همچین نمایش رو بدیم این وقتی اکثر ناس خلاف دینن و ضد دینن پس دموکراسی هم نمیتونه دموکراسی دینی باشه این چیره به هر حال، برای همین این واجه دموکراسی دینی در ده های اخیر در خود کشور ما که حکومت اسلامی مثل پاکستان جای دیگه افغانستان تجربهش رو داشت هم داره این تجربه رو تکرار میکنه خب متفکران این نمیگن دقیقاً واسه این واژه رو برای خودشون خلازه اعتقادی دینی خودشون میگن چی کنن و بفرمایید ما خودان دموکراسی دینی در نظر میذارن یکی دو تا از کسای که کشور ما میبینن تبر واهابتشان و جان و تناقضات تو اینو میزافرید یک دلجاستیش بوده که این معنا واقعاً مفهوم نیست حتی برای متفکران و ایدئولوگ ها هم مفهوم نیست نه اینکه دموکراسی دینی واقعا عملی است و این کو اینکه ان توکا سران نمیذاره که ما دموکراسی دینی داشته باشیم این هم مالیتی که است دموکراسی دینی چیزی است دموکراسی تکنولوژیکی امنیتیال است لو بسیت بدنم دموکراسی تکنولوژی ش هم در خود آمریکا که میخوان پیاده کنن ما دیدیم پیاده نشد تا چه به دموکراسی دینی بنابراین ما به با مسلمان باستی. تا این واژه ها معتادتر باشیم و بهتر بفهمیم که منظورمون اسمان منظور خودمون چیست حالا به عنوان یک جنبندی یک کلی مسئولی که تر شد بسیار کلی بود ما فقط به هر موضوع یک اشاره داشتیم هر کدوم از اینها ها ساعتها قابل بحثه با این مجبوریم صحبتیمون سر رو سرش را هم بیاریم یک جنبندی که بکنیم میتونیم ایچین این بگیم پس واضح شد که بیمانیست قفلت انسان از خویشتن و بیرون گرایی و طبیعتا ابتلا ابتلاب غیر خوده لازه طبقات برابط اجتماعی منشه این ظلم در خانواده روخ میده همونطور که لازه جامعه جناسی این واضح شده که منشه هر ظلمی در خانواده است ما هم با چند تا مثال نشون دادیم که بمیزانی که زن و شوهر اراده به بد روح هم دیگر رو دارند. بمیزانی که هم دیگر میپرستند. ولی این پرستش اراده به آدمخوری رو پدید میاره. آن خانواده در قلم ظلمت و ظلم قرار میگیره. و افراد این خانواده هایی در جامعه قلم ظلمت و ظلم پذیری هستند. و ای که خانواده آشکسن این طور هستند نمیتونه حکومتی ظالم نداشته باشه اینم خودش عدله حکومت سال علی نشان داد که نمیتونه یک حکومت عادلی بر جامعه ظالمی حکم براند خود حضرت علی علیه السلام این رو میدونست برای همین بود که با اکراه حکومت رو پذیرفت حتی تهدید کردن رو برای همین بود اون روزی که داشت بید میگرفت خط کشید بر روی زمین گفتش که با این حال شما عدل من رو تحمل نخواهید کرد همین هم شد علی و رو پذیرفت تا به ممنان در طول تاریخ آینده نشان بده که اصلا عدل یعنی چی و ظلم یعنی چی قرآن نیز داریم که خداوند سقیبشت قومی رو تغییر نمی در اینکه افراد آن قوم نفس خود را تغییر دهند پس ببیند مسئله ظلم و عدل همامن ریشه در نفوس بشری داره امریست انسانی و باطنی یک ای از بیرون از حکومتها از آسمان نیست بنابراین هر کسی که میگه به من ظلم شده است دیگران به من ظلم کردند و من رو بدبخت کردند چنین کسی ظالم است اصلا در ظلمت قرار دارد که چنین حرفی رو میزند و خودشان ظالم است ظالم است ف نمیکنه اگر در بالا باشه القا کننده ظلم در پایین باشه ظلم زیره در شرایط خودش از بالا دست زر میپذیره زر میپذیره افته در زیر دستای خودش الگاه میکنه حرق نتار بنابراین موقع رسول اکلم که میفرماید اهل جبر اهل دوزخ است. اهل جبر یعنی جبار کسی که خودش رو علت خودش نمیدونه خودش رو صاحب اختیار سرده بشه خودش نمیخواد بدونه و قرار بده خود به خود است میشه جبرست میشه می یعنی جبار میشه و حدی دوزخ میشه اهل آتش میشه دوزخ ظلمته ظلمت رو ما تعریف کردیم یعنی چه انسان میزانی که از خودش بیگانه میشه در ظلمت و لذا در ظلم قرار میشه بنابراین لازم معرفتی جبر پلاستی منشه ظلمه چه این تبر تاریخی باشه حتی اسمش جبر آسمانی و مشید الهی از آسمان باشه حتی ظلم و خدا نمیپذیره در قرآن کریم آمده در آن روز اگر بگویید که علت تباه شدن سرد ما خوهر و برادر و همسر و فرزندان و والدین و همسایی ها و دوستان بودن و حکومت های جبار بودند و رهبران ما بودند و معلمان ما بودند ما رو فرید دادند و به انداختند شما از گفته نقا شد دی را دروغ میگویید و می دانید که دروغ میید هم چیزی نیست دست با خدا صبت نزنید به هیچ کسی زده می شود هر کسی خودش به خودش صلح میکنید پس